بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم در پس آینه توتی صفتم داشتند آن چه ازل گفت الگفت بگو میگویم من اگر خارم و گرگل چه رایی هست که از آن دست که او میکشدم میرویم دوستان ای ب من بیدل حیران مکنید گوهری دارم و صاحب نظری می جویم گرچه با دلق ملمع می گلگون ای وست مکنم ای کزو رنگ ریا می شویم خنده و گریه عشاق ز جای دگر است می سرایم به شب و وقت سحر می مویم حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی گوم مکن ای که من مشک ختن می بویم